گرامیان درود بر شما فایل آوایی چهار از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می کنی. صفحه چهل و سه عنوان شواهد شناختی تا اینجا به پدیده هایی در مغز پرداختیم که ظاهراً منشه آنها مغزهای کوهن ما یعنی ساغه مغز و دستگاه لیمبیک بود بخش های که با میل و رقبت و یا درد و ترس و عواطف و احساسات گوناگون سر و کار دارند می توانند مانع از فعالیت شناختی و عادی قشر مغز بر روی شواهد و مدارک و اطلاعات و تجربیات شوند و یا قشر مغز را وادار به فعالیتی ویژه جهت نتیجه گیری دلخواهشان کنند. قشر مغز فردی که ایمان دینی دارد در مواجهه با باورها و مناسک و احکام ادیان دیگر به گونه ای متفاوت عمل می کند و به راحتی آنها را نقد می کند و خیلی سریع و با اطمینان خاطر به نتیجه گیری می رسد. اما اگر باورهای دینی خودش و مناسک و احکام دین خودش از همان جنس باشند و مشمول همان انتقادات گردند، سارت نقد را نخواهد داشت و شواهد مشابه در رد عقاید خودش را نمی بیند و اگر هم ببیند نتیجه گیری را به آینده نامعلوم مکول می کند. اما ایمان دینی فقط محصول باور داستان دیگران و میل و رقبت یا ترس و وحشت منجر به تاییدان ایمان نیست. بلکه گاهی افراد مؤمن از لحاظ شناختی و معرفتی نیز باور دارند به شواهدی که معید ایمان دینی آنهاست دستی آفده اند. آنها گاهی باور دارند که به معرفت و شناختی رسیده اند که محصول مشاهدات و تجربیات مستقیم و دست اول خودشان است و محصول داستان سرایی یا تلقین پدر و مادر یا معلم و روحانی و یا مبلغ دینیشان نیست تجربیاتی شخصی مثل تجربیات ارفانی، تجربی نزدیک به مرگ، جدا شدن روح از بدن، شنیدن صدا و دیدن افراد و ارواح مقدس و حلولشان در ذهن و بدن آنها حس آشنایی مکانی که برای اولین بار به با آن وارد شدهاند به عنوان شاهدی بر زندگی های قبلی یافتن الگوهایی واضح در دنیا که نشان از طراحی هدفمند و حکیمانه اتفاقات روزگار توسط یک موجود حکیم دارد یادآوری خاطرات از معجزاتی که خودشان دیدهاند دیدن مستقیم معجزات در زمان حاضر و نظر اجماعی علما اکنون به بررسی عملکرد مغز در زمینه پدیده‌های شناختی و معرفتی مستقیم و دست اول می‌پردازیم تا ببینیم چگونه این پدیده‌ها به وقوع می‌پیوندند و چه می‌شود که هر کسی با هر مذهبی آنها را به عنوان شاهدی مستقیم بر تعیید ایمان مذهبی خودش به کار می‌برد ابتدا کمی درباره مفهوم شناخت توضیح می‌دهم یک. من به آقای الف اعتماد دارم از او میپرسم امروز چند شنبه است او میگوید یک شنبه است من با توجه به شناختی که از او دارم به این نتیجه میرسم که امروز یک شنبه است من از این لحظه میگویم که میدانم امروز یک شنبه است این یعنی نسبت به یک شنبه بودن امروز به حس شناخت و معرفت رسیدم دیگر لازم نمیبینم بیشتر تحقیق کنم دو. من از آقای الف می‌پرسم امروز چند شنبه است او می‌گوید امروز یک شنبه است از بابت درستی نظر آقای الف مطمئن نیستم و هنوز نسبت به اینکه امروز چند شنبه است به حس شناخت و معرفت نرسیدم و باید بیشتر تحقیق کنم پس به تلفن همراه هم هم نگاه می‌کنم تا ببینم چه روزی از هفته است می‌بینم آن هم روز یکشنبه را نشان میدهد. اکنون به حس شناخت و معرفت نسبت به اینکه امروز چند شنبه است میرسم اکنون میدانم امروز یک شنبه است دیگر لازم نمیبینم بیشتر پرسجو کنم 3 آقای الف به من میگوید که کرونا داستانی است که ساختن تا مردم را بترساند آقای الف میگوید که میداند کرونا وجود ندارد و همه خبرهای آن دروغ است و ساختی رسانه‌ای است که در اختیار اربابان قدرت است اربابانی که توتعی در سرشان دارند من به آقای الف اعتماد کامل دارم من به این نتیجه میرسم که میدانم کرونا یک داستان ساختگی است و وجود خارجی ندارد من حس می‌کنم که در مورد وجود نداشتن کرونا به شناخت و معرفت رسیدم من لازم نمی‌بینم بیشتر تحقیق کنم لذا نه ماسک میزنم نه واکسن ویروس کووید 19 مرا مبتلا می‌کند. حال به این نتیجه میرسم که در مورد وجود نداشتن کرونا دچار خطای شناختی شده بودم و اعتماد به آقای الف برای رسیدن به شناخت و معرفت کار درستی نبود روش معرفتی و شناختی من خطا بود و نیاز به شواهد و بررسی بیشتری داشتم تا نسبت به واقعیت شناخت پیدا کنم. همچنین به این نتیجه میرسم که آقای الف که باور داشت همه ی حرفای رسانه‌ها محصول یک توطعه بزرگ است، دچار خطای شناختی بود. حس دانستن آقای الف هم حسی خطا بود. آنچه در ذهنش به عنوان واقعیت شکل گرفته بود با واقعیت بیرونی یا عینی منطبق نبود. من به این نتیجه می رسم که آقای الف از مجموعه وقایع و اخبار اطرافش درک کرده بود که همانا الگوی یک توتعه بود، یک خطای شناختی یا معرفتی بود. من بهبود می و حالا آقای الف کرونا می گیرد و بستری می شد. او از بیمارستان برایم پیامک میفرستد که اکنون که دچار چاره شدید تنفسی شده و با توجه به مجموع شواهدی که در اطرافش میبیند نظرش عوض شده و به شناخت جدیدی رسیده. او میگوید دیگر الگوی توته را نمیبیند بلکه به شواهد فعلی مثل نتایج آزمایشات و حرفای دکترها و مریضهای اطرافش بهای بیشتری میدهد. او این بار میگوید که میداند کرونا وجود دارد. چهار. شخصی قرص روانگردان مصرف کرده و میگوید که میدید روی زمین تعداد زیادی مورچه در حال حرکت هستند. او میگوید که میداند روی زمین پر از مورچه است. اطرافیانش چیزی نمیبینند. او مطمئن است مورچه ها وجود دارند چون آنها را میبیند. او حتی به همسرش میگوید اگر خانه را به خوبی تمیز کرده بودی این همه مورچه روی زمین پیدا نمیشد او در مورد شناخت و معرفتش نسبت به حضور مرشه ها یقین دارد پس شناخت یا معرفت یا یقین ما لزوما با واقعیت بیرونی منطبق نیست اما به هر حال بر عقاید رفتار گفتار و شیوه زندگی ما تأثیر میگذارد از پردازشی که مغز ما بر روی مجموعه داده‌های برودی از حواسمان و آنچه از قبل در حافظه داریم انجام می‌دهد، حس شناخت و دانستن به وجود می‌آید. گاهی تصورات ما تماما بر ساخته خود مغز ماست، مثل توهم. بدون داشتن حس شناخت، نمی‌توانیم به راحتی تصمیم بگیریم و دست به عمل و اقدام بعدی بزنیم. اگر بدانم امروز یک شنبه است، دست به اقدامات مشخصی میزنم و اگر بدانم امروز دوشنبه است، دست به اقدامات مشخص دیگری میزنم اگر ندانم امروز چند شنبه است، در مورد تصمیمات و اقدامات بعدیم بلا تکلیف میمانم حال به بررسی انواع پدیده شناختی که ایمان دینی را تعیید یا خلق میکنند بپردازیم ابتدا؟ با تجربیات عرفانی شروع می کنیم. عنوان تجربیات ارفانی معمولا تجربیات ارفانی را در ابتدا با عباراتی چون غیر قابل بیان و ماورای محدودیت های زبان توصیف می کنند. اما به هر حال افرادی که چنین تجربیاتی داشتند نهایتا توصیفاتی از حالی که بر آنها گذشته ارائه داده اند. در دهه‌های گذشته، مطالعات متعددی برای به آوردن فراوانی و تشابهات چنین تجربیات غیر قابل بیانی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که چنین تجربیاتی نسبتاً معمول هستند و نمی‌توان عنوان نادر و کمیاب به آنها داد. در سال 1979 در مطالعه به سرپرستی دیوید هی از سوال شوندگان پرسیده شد آیا تجربه ای ارفانی داشتند یا خیر؟ 29 ممیز چهار درصد جواب مثبت دادند که از آنها 20 ممیز دو درصد تجربه ای از حضور یک ذات و 9 ممیز دو درصد تجربه ای از حس وحدت و یگانگی با هستی یا ذاتی دیگر داشتند. در مطالعه دیگر در مورد داشتن تجربیات ارفانی و شرح تجربیات عرفانی که بین سالهای 2008 تا 2013 توسط دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نهایتاً مشروح تجربیات 777 نفر از شرکت کنندگان که پاسخها و شرح‌های قابل ارزیابی در مورد مشاهدات ارفانیشان داده بودند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده ها نشان داد که افراد موحد یعنی مسیحی ها،, ها، و مسلمانان به نسبت کمتر از معتقدان به ادیان شرقی یعنی بودایی هندوها، باورمندان فلسفه های مثل دائیس و ادیان معروف به شرکالود یا بدپستی دچار حالات عرفانی می شدند. فراوانی حالات عرفانی در آتئییس چیزی در میان دو گروه مسکر بود با آنالیز لغاتی که آنها در شرح تجربیات ارفانیشان به کار می بردند، مشخص شد اگرچه کلمه گاد یکی از پرتکرار ترین کلمات در شرح و توصیفات آنها بود اما در مجموع کمتر از کلمات تخصصی مربوط به هر دین و مذهب استفاده کرده بودند. گویی تجربیات ارفانیشان را کمتر تحت تأثیر آموزه ها یا تلقینات مذهبشان توصیف می کردند. البته پاسخها به زبان انگلیسی بود و کلمه گاد برای مؤمن به هر دینی خدای همان دین است به عبارتی وقتی از کلمه گاد استفاده می‌کردند نیز در واقع از یک مفهوم اختصاصی دین و مذهب خودشان در شرح تجربهشان استفاده می‌کردند یعنی با توجه به مفهوم اختصاصی و متفاوت کلمه گاد در هر دین و مذهبی نمیتوان گفت که این کلمه پرکاربردترین کلمه در شرح تجربیات عرفانی بوده است. از آنالیز کلمات شرح دهندگان تجربیات عرفانی به نظر می آید تجربیاتشان از جهاتی با هم شباهت دارد. اما گاهی تفسیرهای مختلفی در راستای تایید ایمان دینی خودشان روی آن تجربیات انجام می‌دهند مثلا اگر حضور یک ذات یا شخص ماورایی را در نزدیک خود حس کنند نام خدای خود یا مقدسین دین خود را روی آن ذات میگذارند و از اینجا به بعد ممکن است این تجربه برایشان یک شاهد و مدرک مستقیم برای اثبات صحت ایمان دینیشان محسوب شود مایکل پرسینگر و همکارانش در دانشگاه لورنتیان به تحقیق درباره رابطه بین حس حضور خدا یا ذات و نفوس دیگر با فعالیت های مغز پرداختند. آنها با استفاده از کلاهی به نام کلاه کورن که بعداً به کلاه خدا معروف شد، یک میدان مقناطیسی را بر نقاط مختلف مغز متمرکز می کردند. میدانیم تغییرات میدان مقناطیسی در هر نقطه از فضا میتواند موجب حرکت الکترونها و یونها شود میتوان انتظار داشت که این امر عامل های الکتریکی و ایجاد پالس‌های عصبی در نقاط مورد نظر در مغز گردد با ایجاد تغییرات خفیفی در میدان مقناطیسی در ناحیه لوب گیجگاهی سیستم لیمبیک راست مغز افراد مشاهده شد که بعضی از آنها حضور موجودات یا ذاتهایی بدون صورت و بدن را در اطراف خود حس می می‌کردند. گاهی یک ذات و گاهی چند ذات. حتی میتوانستند محل حضور آنها را نیز مشخص کنند. تجربیات همه افراد تحت مطالعه یکسان نبود. بعضی اظهار میکردند حضور خدا را حس کنند. بعضی اظهار حالت خلسه و سرخوشی داشتند. بعضی احساس یگانگی با جهان می کردند. بعضی ابراز تجربه نزدیک به مرگ کردند و تصور می کردند در یک مارپیچ تاریک به سوی نوری در انتهای آن حرکت می کنند هیچ دو نفری تجربه دقیقا یکسانی را مطرح نکردند بعضی صداهایی می شنیدند بعضی صورتهایی غیر عادی می دیدند. بعضی حضور کسی را در پشت سرشان گویی به آنها زل زده باشد حس می کردند بعضی افرادی آشنا را میدیدند. بعضی می گفتند از بدنشان فاصله گرفتند و آن را از بالا می بینند اما اظهارات بر حس حضور دیگری یا دیگران در اطرافشان دور می زد و از این لحاظ به هم شباهت داشتند حضوری کاملا واضح و روشن، اما غالبا بدون بدن و صورت آنها اظهار می آن حضور را بدون شک و شبه درک می کنند آنها میدانستند که کسی یا کسانی در اطرافشان حضور دارند از دید مایکل پرسینگر علاوه بر محرک های الکتریکی محرک های شیمیایی و محرک های زندگی اجتماعی نیز میتواند لبه گیجگاهی را تحریک کند شاید چل نشینی ها و خلوت گزینی های سالکان نیز بتواند در تحریک لوب گیجگاهی و خلق تجربیات ارفانی توسط مغز موثر باشد. سالها پیش از تحقیقات مایکل پرسینگر وایلدر پنفیلد جراح اعصاب کانادایی هین جراحی مغز بیماران مبتلا به سر متوجه شده بود. هشت درصد بیمارانش در اثر تحریک الکتریکی قطعی گیجگاهی از تجربیات پیچیده‌ای سخن می‌گفتند این بیماران که بیهوش نبودند و در حال هوشیاری مورد عمل جراحی قرار می‌گرفتند می‌گفتند به نظر می‌رسد کسی کلماتی را ادا می‌کند اما آن صدا به اندازه ای ضعیف است که قابل شنیدن نیست یکی از آنها گفته بود تصاویر یک سگ و گربه را می‌بیند و سگ گربه را دنبال می‌کند پنفیلد نتیجه گیری کرده بود که لابد لوب گیجگاهی جایگاه ضبط خاطرات است. این نظریه بعدا از جانب دیگران مورد تردید قرار گرفت. عنوان تجربه خروج از بدن در تجربه خروج از بدن فرد مشاهداتی دارد که او را متقاعد می کند از بدنش خارج شده است. یعنی تفسیرش از آن مشاهدات او را به این نتیجه می رساند، که میداند واقعا از بدنش خارج شده بوده است گفتیم بعضی از افرادی که مایکل پرسینگر لبه گیجگاهی لینبی که راست آنها را توسط کلاه کرن تحریک کرده بود ادعا میکردند دوچاره چنین مشاهده ای شده اند مطالعات دیگری نیز درباره این تجربه صورت گرفته است اولاف بلنکه عصب شناس از دانشگاه ای مشاهده کرد که در جریان درمان سرع بیمارش و در حین تحریک ناهیه تی پی جی یا تمپوروپاریتال جانکشن توسط الکترودهای روی سر بیمار او دچار تجربه خروج از بدن شد به صورتی که بیمار خودش رو بیرون از بدنش و در حال مشاهده بدنش بر روی صندلی و دیگر افراد داخل اتاق حس می کرد. او شش بیمار را تحت مطالعه قرار داد و متوجه شد که در چهار بیمار دارای سرع کانونی مرکب حمله سر موجب ایجاد تجربه خروج از بدن شد. در سرع کانونی مرکب شخص دچار گیجی و منگی می شود و حدود چند دقیقه توانایی پاسخ دادن به پرسش ها یا امکان یافتن جهت و درک موقعیت خود را ندارد. یکی از بیماران همان بود که با تحریک الکتریکی قشر مغز به طریقی که گفتین دچار تجربه خروج از بدن شد. یکی از بیمارانش نیز احتمالاً به واسطه حمله میگرن و کم بودن اکسیجن از مغز دچار تجربه خروج از بدن شد. به جز بیماری که به واسطه تحریک الکتریکی تجربه خروج از بدن پیدا کرد، بقیه در هین حمله سر، و یا حمله میگرنی و تجربه خروج از بدن هوشیاریشان تا حدی کاهش می‌یابد ناحیه تی پی جی می‌تواند با جمع‌آوری اطلاعات حس لامسه، بینایی، شنوایی مربوط به عصب وستیبولار یا دهلیزی و اطلاعاتی که از وضعیت قرارگیری مفاصل و جهت حرکت مفاصل دریافت در می‌کند موقعیت بدن را برای ما روشن سازد مطالعات بلنک بر روی تصاویر و عملکرد مغز بیمارانش و آزمایشهایی که روی افراد داوطلب انجام داد، او را متقاعد کرد که اختلال در عملکرد ناحیه TPj یا اختلال در رسیدن اطلاعات از حواس ذکر شده به مغز می تواند به درجات مختلف تجربه خروج از بدن را موجب شود. به هر حال در این تجربه شخص به این شناخت و معرفت میرسد که بیرون از بدنش قرار دارد. ولی این شناخت با واقعیت انتفاق ندارد این تصاویری که او میبیند برساخته فعالیت‌های مغزی اوست عنوان تجربه نزدیک به مرگ تجربه نزدیک به مرگ توسط بعضی از اشخاصی گزارش شده است که دچار سوانه و رویدادهای تهدیدکننده زندگی شدهاند. رویدادهایی چون حمله قلبی خفگی ضرباتی که به سر وارد می‌شود و شخص هوشیاریش را از دست می دهد، شکهای منجر به ناهوشیاری و از این قبیل. تحقیقات مختلف می گویند ده تا بیست درصد از بیماران دچار ایست قلبی اظهار کردند که چنین ای را داشتند. آنها می گویند که وارد قلمروی متفاوت شدند. قلمروی بدون مکان و زمان. تجربیات آنها شباهت قابل توجهی به هم دارند. نداشتن درد، دیدن نور در انتهای یک تونل، جدا شدن از بدن و پرواز بر فراز بدن یا پرواز در فضای خالی. آنها گاهی عزیزان زنده یا مردهشان و یا شخصیتهای ماورایی دینی مثل فرشتگان و خدایان دینشان را هم دیدند. گاهی به نظرشان آمده که همه خاطراتشان به سرعت از جلوی چشمشان رد شده. گرچه تجربیات نزدیک به مرگی که همراه با حالتهای خوش هستند بیشتر مورد توجه و بازگویی قرار میگیرند اما بعضیها هم تجربه های تلخی را از سر میگذرانند مثل حالت وحشت تنهایی ناامیدی و اضطراب به نظر میآید بسیاری از این قبیل تجربیات تلخ به دلیل شرم بازگویی نمیشوند در سال 2017 در مطالعی که توسط دانشگاه ویرجینیا صورت گرفت، از 129 نفر از کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند، درباره خاطرات آنها از آن تجربه و دیگر وقایع همزمان با آن تجربه سوال شد و معلوم شد خاطرات تجربه نزدیک به مرگ وضوح و ماندگاری بهتری در ذهن آنها داشته است. تحقیق آنچه در این شرایط در مغز میگذرد دشوار است چون مثلا نمیتوان کسی را در دستگاه آی قرار داد و اتفاقاتی همچون کمبود اکسیژن که در ایست قلبی برای مغز پیش می آید را بازسازی کرد و دید چه بخشهایی از مغز در حال فعالیتند اما در طول سالهای جنگ سرد و طی تمرینات مخصوص خلبانها و نیز در تمرینات فضانوردان ناسا مشاهدات دقیقی از این پدیده به دست آمد این دو گروه در تمرین‌هایشان درون هایی که به سرعت حول یک محور می‌چرخیدند قرار می‌گرفتند تا وضعیت فیزیولوژیکشان در شرایطی که با نیروی معادل 5 برابر نیروی جاذبه زمین مواجه می‌شوند سنجیده شود در این شرایط سیستم قلبی عروغی توان خون رسانی به مغز را از دست میدهد و خون در قسمت پایینتنت تجمع پیدا می کند و خلبان بیهوش می شود. ده تا 20 ثانیه بعد از توقف این نیرو هوشیاری بر می گردد. خلبان تا دقایقی گیج است و دچار اختلال در تشخیص جهات می باشد. آنچه خلبانان و فضانوردان از تصوراتشان در آن لحظات گفتهاند، شباهت قابل توجهی با تجربه نزدیک به مرگ بیماران دارد تونلی که در انتهایش نور است حالتی شبیه بیدار شدن از خواب احساس فلجی نسبی یا کامل حس پروازی همراه با آرامش احساس بیرون رفتن از بدن احساس لذت و سرخوشی و رویای کوتاه، اما واضح که اغلب شامل گفتگو با اعضای خانواده بود خاطرات این تجربه نیست تا سالها واضحتر از خاطرات وقایع همزمانش در ذهن خلبانها و فضانوردان میماند مشاهدات این افراد شامل رویاها یا تصورات دینی مثل دیدن بهشت و فرشتگان نمیشد شاید به این دلیل که آنها از قبل میدانستند که قرار است فقط تا حد بیهوش شدن تحت فشار قرار بگیرند و لذا به امور دینی و مرگ فکر نمی کردند. به نظر می آید کاهش خون رسانی به مغز منجر به این می شود که بخش های مختلف مغز یکی یکی از کار بیفتند و خاموش شوند. احتمالا گاهی آخرین بخش هایی که هنوز از کار نیفتاده اند همانهایی هستند که آخرین فعالیتشان ایجاد این قبیل تصورات و احساسات در ذهن شخص است این بخش‌های آخر در چنین شرایطی که بقیه قسمت‌های مغز فعالیت ندارند دیگر تحت کنترل و سرکوب آن بخش‌ها نیستند و آزادانه آخرین کنش‌های خود را انجام می‌دهند برای شخص مؤمن تجربه خروج از بدن و تجربه نزدیک به مرگ مشاهداتی به حساب می آیند که یک پیشفرض مهم او را تقویت می کنند و آن اعتقاد به وجود روح است. اغلب مؤمنین ذات و سرشت اصلی خود را انصری مجزا از بدن مادی خود می دانند که موقتاً در این بدن لانه کرده و با آن در ارتباط و تعامل است. اما با سررسیدن مرگ آن را ترک می کند و به این ترتیب روحش بدون بدن به جهانی دیگر می و یا بعد از مرگ وارد بدنی دیگر می شود و سپس با این بدن جدید به جهان دیگر می و یا در بدنی دیگر به همین جهان برمیگردد و زندگی جدیدی را با بدن جدیدش آغاز می کنند. مؤمنین تجربه خروج از بدن و تجربه نزدیک به مرگ را به عنوان وضعیت های تفسیر می کند که در آنها جوهر یا روح یا روان یا آگاهیشان واقعا از بدنشان خارج شده است آنها این مشاهدات را دلیلی محکم و عینی از دوگانگی روح و بدن به عنوان دو انصر متفاوت محسوب می نماین. ایشان گمان دارند که انصر اصلی وجودشان که همانا روح است. می تواند بدون بدن به گشت و گذار در کائنات بپردازد و پس از آن در حالی که هر آنچه در کائنات و در بیرون از بدنش مشاهده کرده در یادش مانده است به بدنش برگردد و از مشاهدات بیرون از بدنش با دیگران سخن بگوید برای بررسی این باور لازم است همینجا و پیش از ادامه کار به مبحث مهم حافظه و کارکرد آن و اهمیت آن در خلق هر آنچه که هستیم بپردازیم گرامیان همینجا در صفحه 54 و فایل آوایی چهارم از کتاب فیزیولوژی ایمان به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم حتما در فایل آوایی پنجم به مبحث بسیار مهم حافظه و رابطهش با مفهوم روح گوش کنید. تا درودی دیگر بدرود.